این داستان وظیفه سگانه یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون روزگاری دختر جوون زیبایی بود که مادرش او از دست داده بود و مادر ناتنی روزگارش را سیا کرده بود اون وظایف سختی به دختر واگذار می کرد. کارهایی که از قدرت و تحملش خارج بود دخترک با تمام توانش سعی میکرد هر کاریو که مادر ناتنی میگفت به خوبی انجام بده. ولی مادر ناتنی بدجنس همیشه ناراضی بود و کار دخترک هرگز رضایتشو جلب نمیکرد. هرقدر دختر بیشتر پشت کار نشون میداد رضایت کمتری جلب میکرد. بلایی که مادر ناتنی به سر دخترک آورده رو بود روزگارشو سیاه کرده بود. یکی از روزا مادر ناتنی بهش گفت ای شش گیلو پر رو بردار و بنابر اندازه هاشون سه قسمت کن. وای به حالت اگر نتونی پیش از اینکه شب بشه این کار رو تموم کنی. اگر تمام روز کار کنی حتما تمومش می مادر ناتنی اینو گفت و از در بیرون رفت. دخترک کنار میز نشست و شروع کرد به گریه کردن. مثل بارون اشک می چون می دونست امکان نداره همچین کار سنگینی یه روزه انجام بشه. با اینکه دستش به کار نمی رفت، شروع کرد به جدا کردن پرها. هر بار وقتی قسمتی از اونها رو در کنارش جمع می کرد کمی مکس می کرد. از روی خستگی دستهاشو به هم میمالید و آهی می کشید. هم وقت بود که پرها دوباره پراکنده بشن و مجبور بشه کارشو دوباره از اول شروع کنه. بلاخره از ناراحتی آرنج شروع میز گذاشت و صورتش رو بین دو دستش گرفت و شروع کرد به ناله و گریه. خواهی از من بدبخترم توی دنیا پیدا میشه؟ هیچ کس دلش برای من نمیسوزه؟ در همین موقع صدایی به گوش دخترک رسید. فرزندم ناراحت نباش من بهت کمک میکنم. دخترک سرشو بلند کرد و دید پیرزنی کنارش ایستاده. پیرزن با مهربانی دست دخترک رو گرفت و گفت به من بگو گرفتاری چیه لحن پیرزن با مهربانی همراه بود به طوری که دخترک خوشش اومد و بهش اعتماد کرد دختر سفره دلشو براش باز کرد و گفت که مادر ناتنی چه بلاهایی به سرش میاره حالا هم ای به این سنگینی رو دوشش گذاشته مادر ناتنی تهدیدم کرد که اگه پرا رو به موقع جدا نکنم منو کتک میزنه میدونم حرفش برو برگرد نداره حتما این کارو میکنه دختر اگه همونطور که این جریانو شرح میداد اشک از چشماش سرازیر بود اما پیرزن اونو دلداری داد و گفت آرون باش برو قدری استراحت کن من این کارو برات به موقع تموم میکنم اون کمک کرد که دختر در رخت خوابش دراز بکشه دخترک از شدت خستگی و ناراحتی بلا فاصله به خواب رفت. بعد پیرزن پشت میز کنار پرها نشست. پرها با اشاره دست نحیف پیرزن از هم جدا و دست بندی شدند. تولی نکشید که کار 6 کیلو پر تمام شد. وقتی دخترک از خواب بیدار شد دید که سه پشته بزرگ سفید رنگ از پرها اونجاست و در اتاق همه چیز مرتب و منظمه ولی از پیرزن خبری نیست دختر جوان که شاد و سرحال شده بود از ته دل قدردان زحمات پیرزن بود بلند شد و ساکت و تنها توی اتاقش نشست و منتظر مادر ناتنی شد مادر ناتنی با دیدن پرهای جدا شده از تعجب خشکش با صدای بلند گفت چرا بیکار نشستی یه کاری پیدا کن و انجام بده بعد همونطور که از در بیرون میرفت با خودش گفت دخترک عجب آدمیه هر کاری دستش می دیو انجام میده این دفعه خدمتش میرسم یه کار مشکلتری بهش میدم روز بعد دختر رو صدا زد و گفت این قاشق بزرگ و بردار و آب حوز کنار باخچر رو خالی کن. خودت میدونی که اگه تا شب این کارو تموم نکنی چی کارت میکنم؟ دخترک نگاهی به قاشق بزرگ کرد و دید که مثل آبکش سوراخه تا اگه قاشق سوراخ هم نداشت خالی کردن حوز با اون کاری غیر ممکن بود چه برسه به اینکه سوراخ هم داشته باشه؟ با وجود این کنار حوز زانو زد و در حالی که گریه میکرد شروع کرد به آب حوز و خالی کردن. باز همون پیرزن به دادش رسید وقتی قم و اندوهش دید گفت: فرزندم ناراحت نباش در اون بوت هزار استراحت کن من کارتو به نه فحصن انجام میدم. همین که پیرزن تنها شد دستی روی آب کشید و آب حوز بخار شد و به ابرهای آسمون پیوست و حوز خالی شد. وقتی آفتاب داشت غروب می کرد دخترک از خواب بیدار شد و دید آب حوز خالی شده. ماهیای ته حوزم بالا و پایین می پرند. یک راست نزد مادر ناتنیش رفت و مژده داد که حوز خالی شده. مادر ناتنی که از شدت عصبانیت رنگش پریده بود گفت باید زودتر از اینا کارتو تموم می کردی. بعد به این فکر افتاد که باید کار سختتری بهش محول کنه. روز بعد دوباره دختر و صدا زد و بهش گفت امروز باید بری ته دره و اونجا قصر زیبا برای من بسازی تا غروب باید این کارو تموم کنی دختر بیچاره از وحشت فریاد زد چطور ممکنه کار به این سختی و در چنین مدت کوتاهی انجام بدم مادر ناتنی بهش تشر زد و گفت برای تو که آب حوز و با قاشق سوراخ سرخ خالی کردی ساختن قصر دیگه کاری نداره میخوام همه کارهای قصر یک روزه تموم بشه اگه کمو کم تو آشپزخونه یا انبار ببینم هرچی دیدی از چشم خودت دیدی بعد همونطور که حرف میزد با دست دخترکو بیرون کرد وقتی دخترک به دره رسید دید که سنگ بزرگ و سنگین چنان روی هم انباشته شدن اگر همه توانشو هم به کار بگیره حتی یک سنگ کوچیکم نمی تونه جابجا کنه نشست گریه کردن همونطور که دخترک گریه میکرد کرد پیرزن دوباره اومد با لحن آرامبخش بهش تسلی داد و قول داد کارشو انجام بده. پیرزن گفت: برو در سایه‌ی دراز بکش و استراحت کن. من این قصر رو بنا می‌کنم. وقتی موقعش بشه حتما خود تو اینجا زندگی می‌کنی. بعد از اینکه دخترک از اونجا دور شد، پیرزن دستی به سنگ‌های خاکستری کشید. سنگ‌ها به حرکت در اومدن و جابجا جا شدن و روی هم قرار گرفتند. و دیواره های قصر رو بنا کردند انگار در پشت این دیوارها دستهای های نامرعی بیشماری در کار بودند که سنگ روی سنگ میذاشتند تا عمارت قصر رو بسازند وقتی اتاقهای بزرگ یکی بعد از دیگری کنار هم بنا شدند، انگار زمین به لرزه در اومد. سرامیک های روی سقف با نظم خاص کنار هم قرار گرفتن و نمایی روی برجک قصر ساخته شد به شکل دختری زیبا با موهای طلایی. کارهای داخلی قصر تا نزدیک غروب هنوز انجام نشده بود ولی چطور پیرزن تونست در زمان کوتاه دیوارها را با ابریشم و محمل تزئین کنه خدا میدونه اتاقها با صندلی و نیمکتهای زیبا و میزهای مرمری زینت داده شد چلچراقای ساخته شده از بلورهای تراش خورده از سقف آویزون شدن و با نور لامپها میدرخشیدند توتی های رنگ و پرنده های عجیب و غریب با لحنی خوش آواز می و در اتاقهای متعدد قصر دیده می شدند. روی هم رفته قصر چنان با سلیق تزین شده بود که انگار برای یک خانواده سلطنتی آماده شده. آفتاب غروب کرده بود که دخترک از خواب بیدار شد. اون با دیدن هزاران چراغ پر نور ذوق زده شد و به طرف دروازه بزرگ قصر که باز بود رفت. روی پله هایی که به تالار ورودی منتهی شد فرشی قرمز رنگ انداخته شده بود و بالکن‌های تلاکاری شده پر از گلهای زیبا و شکوفا بود. همه چیز و همه جا آنچنان زیبا و خارق‌العاده بود که دخترک مات و مپوت مونده بود. تا اینکه ناگهان به خودش اومد، جون به یاد مادر ناتنی شافتاد. بعد با خودش گفت چقدر خوب میشد اگر من اینجا زندگی میکردم و از شر همه این گرفتاریها خلاص میشدم. به هر حال وقت اون رسیده بود که به دیدن مادر ناتنی بره و خبر بده که قصر آماده شده. مادر ناتنی در حالی که از روی صندلی بلند میشد گفت: "باید برم و با چشمای خودم قصر رو ببینم." پشت سر دخترک راه افتاد. وقتی وارد قصد شد درخشندگی نور چراغ ها به قدری بود که زن نتونست رو تحمل کنه و به اجبار دستشو روی چشم هاش گذاشت. بعد رو کرد به دخترک و گفت: دیدی چه کار آسانی بود باید به تو کارهای مشکلتری محول کنم. مادر ناتنی به همه اتاقها سرکشی کرد تا ببینه کم وکسری یا جای خرابی پیدا میکنه تا به بهانه اون به دخترک سرکوفت بزنه. ولی هر چه دقت کرد عیب و ایرادی ندید. مادر ناتنی با نگاهی بدخواهانه بهش گفت حالا میرم به طبقه پایین تا آشپسخونه رو ببینم. اگه جایی خراب باشه به خدمتت میرسم. ولی همه چیز مرتب و منظم بود. آتیش شومینه روشن بود. شام روی اجاق داشت آماده میشد و جاروها اوتو و بقیه وسائل سر جای خودشون بودند. قفسه های پر از وسایل و ظرف و ظروف برنجی و مسی و چینی بودند همه چیز محیا بود حتی انبارهای زغال و آب هردو دو پر از آب و زغال بودند مادر ناتنی فریاد زد بگو ببینم از کدوم پله ها میشه به انبار رفت میخوام خودم برم و انبار و سرکشی کنم ببینم همه چیز اونجا روبراهه یا نه وقتی صحبت میکرد دریچه بالای سقف رو کشید ولی همین که خواست به طرف انبار بره دریچه به حالت اولش برگشت و ضربه محکمی بهش زده شد دخترک صدای فریاد اونو شنید و با عجله دوید تا کمکش کنه ولی بعد از اون ضربه محکم مادر ناتنیش روی کف انبار سقوط کرده بود و بلا فاصله جونشو از دست داده بود بعد از مرگ مادر ناتنی قصر از آن دخترک شد ابتدا نمیدونست با امارتی به اون بزرگی چیکار کنه؟ ولی بعد از مدتی خدمتکارانی به خدمت اون در اومدن و از کماد و جالباسی ها زیبا در آوردن و دخترک و به ترس شایسته آراستند. اونها گنج پر از طلا و جواهر مروارید و سنگ های قیمتی هم در قصر پیدا کردند. به نظر میرسید، دخترک با وجود اینا دیگه به هیچ هیچی احتیاج نداشت. چندان طول نکشید که آوازه زیبایی و ثروت اون همه جا پیچیده شد. خاستگارای زیادی داوطلب شدند تا باهاش ازدواج کنند. دختر به همه اونها جواب رد داد. سرانجام شاهزاده ای که پسر پادشاه بزرگی بود به خواستگاریش اومد. شاهزاده تنها کسی بود که به دل دخترک نشست و دخترک عشق اونو پذیرفت. یکی از روزها که اون دو در باغ قصر زیر درخت نشسته بودن و حرف میزدند، شاهزاده با لحنی اندوهگین گفت من باید برم و موافقت پدرم و جلب کنم تا با تو ازدواج کنم نگران نباش زود بر می گردم وقتی خداحافظی می کردند دختر غمگین و ناراحت به شاهزاده گفت سعی کن به من وفادار باشی وقتی شاهزاده به زادگاهش برگشت متوجه شد پدرش تعداد زیادی از دختران زیبا رو دعوت کرده تا به دربار بیان. شاهزاده با دیدن اون دختران زیبا قول و قرارشو با دختر و اون قصر شگفتانگیز از یاد برد. یکی از روزها که شاهزاده سوار بر اسب زیبا به شکار رفته بود با پیرزنی روبرو شد که ازش تقاضای کمک کرد. شاهزاده افزار اسبو کشید تا بهش کمک کنه. اما پیرزن در گوشش گفت محبوب زیبای تو هنوزم زیر درخت داره برات قصه میخوره و گریه میکنه در یک آن شاهزاده همه چیزو به یاد آورد افسارو کشید و به طرف قصری روند که اون پری خوش قلب ساخته بود وقتی وارد قصر شد دید همه جا تاریکه دختر زیبا هم غمگین و افسرده زیر درخت نشسته بود جوان بلا فاصله از اسب پیاده شد و در حالی که به طرفش می رفت گفت منو ببخش من همه چیزو فراموش کردم ولی الان اومدم تا با هم زندگی کنیم تا همیشه با هم باشیم. همین که شاهزاده این کلماتو گفت چراغهای پرنور نور قصر روشن شدن و پنجره ها نورانی شدند. تعداد بیشماری کرم شبتاب دروور دختر روی علفهای سبز شروع به درخشیدن کردند. گلهای زیبای راپله ها شکفتند. چهچه شاد پرنده ها در اتاقهای قصر تنین انداخت و همه جا با رنگهای شاد آراسته شد. شاهزاده دست دختر رو گرفت و به طرف قصر برد. قصر پر از آدمهایی بود که اومده بودن و مراسم عقد اونها را ببینند. شاهزاده با قدمهای تند جلو می و عروس رو با خودش می برد. و این دو در میان شور و شادی مهمانای قصر به عقد هم در آمدن و با هم تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی t.mi/mehrandoosti t نقطه م م -ی -ر -ن -و ای ر یو نشانی وی بلاگ ما م -ر -و ای ر یو نقطه بی ال نقط COم مهران دوستی. blog.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی